پس انسان کافر نمیتونه به دنیا نیازمند نباشه خب در اون ما یک انسان یا بشر مؤمن رو قرار بدیم خب بشر مؤمن خب همچین هدفی نداره بشر مؤمن نمیخواد وجود خودش رو اثبات بکنه بشر مؤمن سپاسگزار بشری است که به همانچه چیزی که در اون داره زندگی میکنه راضی و از هر آنچه که در اون زندگی میکنه شاکره پس چلین بشری دیگه نیازی نداره به دنیایی تا چیزی رو به اثبات برسونه خب خود این همین عامل اول بی نیازی یک فرد مؤمن میشه پس یک مؤمن از دنیا بی نیاز میشه یک مؤمن نمیخواد چون خودش رو اثبات بکنه از دنیا بی نیاز میشه و به همین دلیل همین بی نیازی در واقع خودش میشه صفت و یا ذات خداییت اون در چنین میفرد یعنی ببینید درست قضیه معکوسه یک فرد کافر به میزانی که میخواد خودش رو اثبات کنه و خدا رو انکار کنه خودش نفی میشه و بازیچه دنیا میشه یک فرد مؤمن به میزانی که نمیخواد خودش رو اثبات بکنه و قصدش نیه که خدا رو اثبات بکنه خودش اثبات میشه در همون بیریازی از دنیا اثبات میشه ها. چون تمام مشکلات و مسائلی که یک بشر داره در یوزگی ها،, ها و همون مسائلی که شما مطرح کردین در بیان و توصیف یک مؤمن و یک کافر اینها در میاز بشر به دنیا و درجات این میاز هست که به وقومی هر هرچه یک بشری به دنیا بی نیاز تر باشه مقتدر با اراده تره، و اینها حمو صفات خداییون خب این بیان دیگه بود در واقع من خواستم از کفر و ایمان بکنم و یک فرد مؤمن و یک فرد کافر. حالا از شما خواهش میکنم که شما هم باز هم نشانه های عملی و اجتماعی در واقع کفر و ایمان رو در یک فرد بیشتر توضیح بدید. متشکرم. کمی در تکریمم مطالبی که برمودید مطالبی بسیار محسوس بود در اقیقت بازیدیم ما کفر ایمان رو میگوریم درک بکنیم بدر واجده های فضسفی در افراد کفر بعد همطور که گفتید یعنی ناسپاسی یعنی یا یعنی فوش. خود کلمه کفر و کفره در قرآن یکی از مفاهمی لغتیش یعنی انکار کردن و مخفی کردن و روگردان بودن از واقعیت که خدا بند خلق کرده. از اون انکار خوشتن. اصلا در وحث انکار انکار خوشتنه. انکار خوشتن یعنی چی؟ ببینید ما بس بفهمیم. کافر قبل از هر چیزی نسبت به خودش کافره. چون نسبت به خودش کافره طبعا نسبت به خدا هم کافره. من به میزای نگمیم. همین نیازهای قریضی خودم رو من منکرم و در خودم نمیدونم من کافرم. من نسبت به خدا کافرم. چرا به این که ها نیازها در من گذاشته؟ گوش نمی گی، نیازی چند نیازی به زبون، نیازی به کار کردن. ها؟ به که من این نیازها رو خودم رو در خودم نمیدونم خواه ناخوا، آگاه و ناخداگا من نسبت به خدا کافر میشم و نسبت به دین دشمن میشم. کافر و ناسپاس. منو کافر حد اکثر اونم از ریا و دریوزگی چاکر میشه چاکر و مخلص یعنی چاپلوس میشه اینا رو باید ما باید تفاوت شبست بدونیم بعد متکبره نسبت واقعیت جهان جهان نشانه های خداست و راه خداست اگر جهان راه خداست یعنی دینه پس انکار نسبت به واقعیت جهان که در رسیش واقعیت وجود خیشتنه در واقع همون انکار نسبت به دین و ادابت نسبت به رسولان خدا میشه به طور طبیعی اینها گام بگم از انسان کافر خاجه میشه یک بار ما این تحریف رو جای میکردیم یک کسی که خیلی منظر میرسید انقلابی باشه و خیلی روشن فکر گفتش که این تحریف شما از ایمان میکنی درست مطلوبه استعمارگران ستمگران عربابان ماد مردم خوران و مستبدانه این دین شما اسلام شما اسلام و دین مطلوب استعمارگران اسلام آمریکایی همینه ببینید مسئله باست کم واضح بشه مؤمن کسی نیست که تسلیم ظلم باشه اتفاقا درست برعکس چون او نیاستان خودش رو با حد قناعت پیش کرده لذا دریوزه دنیا نیست لذا دریوزگی ستمگران رو نمیکنه لذا زیر بار استعمارگران اربابان و مستبدان نمیره این واسه بدونیم ما انسان مومن اثبت به خودش در خودش آرامه و قانه به همان میزان ها او کشمی دیدن ظلم بر مردمان رو نداره و اگر مردمان مظلوم از روی تقاضیه کمک کنند حتی از جان خودش میگذره و میره به اونها یاری میرسونه فحاشی با آدم و آدم اسمش رو خیلی متاسفانه که داشتن انقلابیگری و یا یعنی اسلام انقلابی اینه این هم تشخیص بدیم خود که شما پرمودی در این تابقی غریبه ن از کافر از خودش هم نفرت داره. ازن از خود بیگانه است. به هم میزان این نفرت از خود رو با میده به بیرون. چون کافر نمیخواد خودش رو از خودش بزنه. چون منکر ذات خودشه، منکر خدا خودشه، به همین دلیل نمیتونه خود در خودش علت خودش باشه و انتخاب کنه سردیش رو، به همین میزان تمام گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها و نیازمندیهاش رو گردن دیگران میندازه، گردن مردمان، حکومت در و همسایه پدر و مادر لذا به همه فوش میده و جیدا مست شده که این فشی اسمش انقلاببیگرری شده و این اگر انسانی انقلابی است اسلام انقلاببی هر کس بیشتر فرش دیگران انقلابی تره. ما این دولو انقلاب رو بی تماس قا بشیم انقلابیگرری غلابیست انقلابگری منافقانه است طرف دنبال منافی خوبیی خودش چهار شعار انقلابی پیدا کرده تو عنوان دفاع از خلق خوم دام مبارزه با و ستم و استعمار و رو و فلان ولی فقط در جستجوی منافی شخصی خودش از این حالا میون رو ما دیدیم در همه جای دنیا از اون روکن رو اون دیدیم همینقدر مثال فکر کنم کافی باشه این منظور ما از مومن کسی که آرامه به کسی که ظلم وزیرره نیست ن اتباقا مهم زب نه این و چشم دیدن ظل بر مردمان رو هم نداره و وگر مردمان کمک بخوان چه از جان خودش رو میگذره از مال خودش میگذره تا به مردمان یاری بده این توابط رو ما باستی درخ بکنیم بنابراین مکتب اصالت بردگی و بدبختی نیستیم اتباقا مکتب اصالت عزت نفس و شرافت و استقلال و آزادی رأی و انتخاب راهی ما کافران فقط شعار آزادی میدند و به میزان خود در دستشون اومد خودشون مستبط و غ قارتگر مادون جانو ناموسی مردمان میشن این تجربه رو همونجا جماع ببینید ایمان شبه فرموید که مومن هرگز خودش رو ثابت بله آنکه که هست نیازی به اثبات هستی خود ندارد بقید مومنه که احساس هستی میکنه. کنه برای خدا رو در خود دل خودش یافته آفته کشف کرده برون به خود خدا مگه نمیگیم مسئل هستیه پس مومن یک انسان هستی داره کسی که هست نیازی به اثبات خود برای دیگران و بر علیه دیگران نداره انسانی که منکر خداست منکر ذات خودشه از خود بیران است و در قحطی بودوده رضا شبان روز هیچ کاری نمی‌کنه کنه لانکه خودش رو برای دیگران ثابت کنه و در جریان اثبات خود برای دیگرانی که چنین موجودی تبدیل به یک انسان مستبد ظالم و متجاوز به حقوق دیگران میشه اینم هم دیگری از گفت در قدم رو حیات اجتماعی و روابط اجتماعی ما امروزه در عرصه واقعا قیامت و آخر زمان قرار داریم ما این وفایم رو همیشه متذکر شدیم که هیچ مطلبی رو امروزه نمیشه فهمید که ما قیامت رو بفهمیم و فهم کنیم که ما در قیامت هستیم و لذا تا بتونیم پدیده ها بردش های امروز جهان رو درک کنیم قیامتی آخراز زمان ببینید ما گفتیم که ذهن انسان قلم رو به کفت شرک و نفاقشه. قلب انسان قلم روی ایمانشه تا کمال اخلاق دارسته خدای کافران ما بس بدونیم که آنطور که قرآن تحریفیم میکنه بابا می کافران لزوما کسانی نیستن که بگن خدا نیست. نه خیر. ببین جو بحث میشه گفتش که کافر رικοریزمی وجود نداره الان. امام هم چون باید دش ازی باشه که بگه خدا نیست. به استثناء یک هم گشمار از فلاسفه این قر مثل نیچه، ایشان نگفته خدا نیست. پس این ایمان است هم مولوانان؟ نه خیر. چون کفر ایمان گفتیم در عمل قرآن با ما میاموزه که آمین و عمول صلاحات عمله هرگز در نمیشیم نمیشه این تا که توابط کافر مومن در امور عبادی باشه اصلا چیزی نداریم بله خداوند مؤمنان را نیز در مرحله از ایمان که بسیدن دعوت به مثلاق قام به میکنه مومنان را نه مسلمین را مومنان را. اسلام دین زهنیست خداوند مسلمین را در هیچ آیه‌ای دعوت به قام به نکرد اسلام وقتی قلبی شد، دی وقتی قلبی شد به این از تکامل رسید و خداوند آنها رو دعوت میکنه به اقامه سلاعت ببینید دعوت میکنه به اقامه بنابراین نشانه کفر و ایمان عملی تا قرآن سطح بود کافران به اعمالشان شناخته شناخسه میشند اما میدونیم که پی ترین کافران منافقان که استفاقان بیش از مومنان حتی جانوازات میکشن بچه بس ها خیرات رو هم میکنند چه بس ها مسجد میزادند تو قانو ما داریم بگه انهایی که رسول را اصاعت نمیکنند ها میرن به آبادی و اماراتی مساجد میفردازند و جانوازات میکشن ما رو و خداوند اونها رسوا میکنه و همین اعمالشون رو برایشون عذاب میکنه اونهایی این کار میکنه ما یک سخنه پیانبر داریم که توسط مامان ما شده سخن بسیار مهم و آن اینه که بی امام کافر است کسی که امام حی و زنده نداره او کافر است سخن دیگری از درسته داریم که بسیار مفصل می که اگر کسی تمام اکام شریعت مرا انجام دهد و تمام درجاتش رو رایت را کند حلال و حرام و مستحب و مکروه همه این دقیق رایت را بکنه مو به ولی اگر امام حییو حاضر نداشته باشه او وقتی بمیره در قرف روحشتا قیامت باقی میمونه. در جادی بیان میمونه که او کافر است. در واقع باید گفت کافر دو سبقه از سین منافق میشه. یعنی احکام شریعت به خودی خود انسان رو به مطلوب به اون هدایت نمیرسونه. امام صادق قضی السلام در تفسیر و شرح این کلام پیامبر فرموده که بله منظور از امام ام امام خب ما بیانیم این مقدار جنبه روحی و روانی این قضیه رو توصیف کنیم می چرا به ایمان است همون آیه که در هست که چه بسا کافران میگنه که هاش ما بودیم پس اونها در دیدن مومنانه که دوست میبذارن که ایمان بیارن و چه با و برخی از اونها میکنن و ایمان هم میارن خب من وقتی یه مومنی رو میبینم که وصفه از آرامش و, عزت و, احساس و وجود عزته و من اون دوست می‌دارم، دارم. به اون دل می دم. و اون نور هدایت من می شه. اون امام من. باید می سنیست. هم توی در دا قرآن داریم که ما اونان اولیای هم دیگر هم. چون امام هم دیگر هم. این نور هدایت هم دیگر هستن. تا نهایتاً برستن به اون امام کامل و امام مطلق برستن. که خیلی را داره تا اصلاب به اونجا برستن. چرا برای ایمان واقعی است قلبی. حب پس من اگر مؤمنی رو دوست دارم مؤمن دستور خداست در واقع خدا رو دوست دارم و این دوستی خدا رو در دل من حی حاضر می‌کنه و دل من رو زنده می‌کنه چون دل بواسطه حبه که زنده میشه ما گفتیم که فقط مؤمن رو میشه دوست داشت و من حب و اشد حب خداست بنابراین وقتی من یه مؤمن رو دوست دارم دلم زنده میشه و چون دل زنده شد حضور خدا رو در دیام درک میکنم. چون خدا در ذات که در بیشتری حضور داره، وقتی اون زنده شد و واسطه حب به ایم دیگر خدا در فایض میشه و ایمان پیدا میشه. قرآن میفرماید که خدا کافران میگویند که خدا در جای بسیار دور است، بسیار بعید است. خوب ببینید پس کافران هم نمیگن خدا نیست، میگن بسیار دور است. در جای که دیگه, دیگه اونا در ذهن خود خدا رو یاد اینو این خدا کافران بر خدای کافران با خدای ذهنی است. در واقع میشه گفت خدای ذهنی یا زنی که کامستهی حدش خدای جهان فلسفه هاست خدای کفر است، خدای شرک است. هست نوبستی بدونیم که در درون جاش نیست خدای کافران نه خدا رو در واقع انکار کردن در خودشون خدای اونها در ذهنشون تبدیل به ایده خدا میشه که پشت آسمان است. این هم از خود بیگانگی انسان اگر خداوند ذاته و وجود هموست پس انسان کافر خدا را پشت آسمان قرار داده و از خود بیگانه و از خود دور کرده و لذا خودش در قحطی وجود افتاده ولذا انسان های کافر انسان های حریص شخفتناک دنیا پره است و هرچی که بیشتر به دست میارن تر تشنتر و قحطی زدتر و متجابستر میشن پس این بیمام کافر هست محکومش کام هیچ مومنی بدون امام نیست به این معناست دوستی بین مؤمنان دوستی خداست کم حدیث و آیمان نداریم دوتا یا ستا مؤمن وقتی که با هم دوستستر خدا بینشون حاضره ببینید این همون امام رابطه امامتی بین مؤمنانه به این معناست که بی و هم یک مطلب دیگری ما این روزه باش مواجه هستیم که من در واقع اصنه این رو میذارم این گروه از بشاریت رو میذارم کافران مومن یا مؤمنان کافر اگر از قصفه های چنین هویتی کسی مثل نیچه بوده مارکس هم در هم قدم رو به اکزیستانسیت مثل هایدگر و ساس هم در هم قدم رو بید. بنیانگذار این نوع وضعیت خود کرکگارده که بدر اگزیستنسیالیزم معرفی شده اینها رو شاید بشه اسمشون کافران مومن گذاشتی یا مومنان کافر همونطوری که اربای لاحوری نیچه رو اینگونی رو عرفی میکنه که دارای دلی مومن و ذهنی کافر بود. این موضده رو برای یک مسلمان علی فکر و معرفت ترکیه مثلا بی بید نهایت چرا برای که ما در غلم روی آخر و زمان هستیم در ذهن کافر و دیر مومن داشتن فقط خواست نیچه نیست چون نیچه انسان مشغولی شد و در این قدم رو به اشدش کفر ذهنی رسید خب یک اصفه شد از این کل کلا ذهن کافر است و در خدای ذهنی خدای کفر و کافران کمال درک انسان از جهان واقعیت ما میگیم دین هم واقعیت است کمال ذهنی انسان از واقعیت قایتش که میخواد به یگانگی واقعیت برسه در اونجا به نیهیز میرسه به هیچی پوچی و نیستی میرسه برای کمال کمال فلسفه زینگرای غربی هم به نیهیزم رسید یه در همونجا بگل حکر فلسفه پایان یافت و خلف شد خب برای همین خدای ذهن یعنی ایده خدا، است که اینقدر دور است، تربایی میشه گفت نیست. عین نیستی. فرامل زن قدم روی صنویت دوگانگی هاست. ارزش های خوب باید با باید نباید. وقتی که زن تمام تلاش ارادی و آگانی و فلسفی خودشان بخواد بکنه که رو بخواد درک کنه، مثل فلسفیه گل میشه. یگانگی او اسمش مطلقه، ولی توصیفش بهش است عدمه که خدای ذهن نیست و همون نیستی خدای زن خدایی که وجود نداره همونطور که فهم یگانگی برای زن در من روی واقعیتها هم همون نیستی میشه و زن ذاتن کافر است حالا اگر انسانی صداش کنه ایمان قلبیش رو خدای وجودش رو که در دلشه رو و تلاش میکنه که به واسطه ذهن و خرد ذهنی و الیتی بیان کنه هر چی که جدوتر میره کافرانه تر حرف میزنه و بیان منطقش کافرانه تر و کافرانه تر و کافرانه تر میشه دادایی که بقولی نیچه که خدا نیست با خدا مورد هست است حالا این اروپایی ها رو بلکنیم مگر بیان منطقی و الیتی عرفای اسلامی تماما از دیدگاه همه مردم کفر عذاب در نمیمده چرا همه عرفای ما مطمئن به کفر و الحاد بودن عرفایی که حرف زدن کتاب نوشتن خواستن استدلال کنند و خدا را در بیان و منطق معرفی ما محکم به ارتداد و الحاد و انکار خدا شدن حکمت که در ذهن و در الیت نمی گنجد حکمت عملی غربی و در عمل جایی میشه شه بس ببینیم این کافران مؤمن فقط در غرب پیداشون نشودند یه داشت گفت که همه ور اخوای ما اونهایی که حرف زدن و کتاب نوشتن خواستن توحید رو به بیان منطقی در بیارن ها الله از همه مردم اونهایی که نمیتونن نمی این تضاد و این دیالکتیک رو درک کنند کفر برمیده و متهم به الحاد شدند دعوای بین علما و عرفا در سلطه تاریخ اسلام همین سو تفاهم بوده چرا برای اینکه که زن قدم رو به آنگاه که میخواد یه و تورید رو بیان کنه به اشد تضاد و دیالکتیک میرسه و کفت میشه ایمان یدفه عصبتر میاد زشتی زیبایی عصبتر میاد یعنی همیچی وارونه عصبتر میاد فهم این مسئله از باتون بغاية عارفانه ببینید ما در کلام خود سلطان عارفان و بانی علم در جهان اسلام یعنی حضرت علی با سخنان ایشون داریم که اگه بخوام تفسیر فلسفی کنیم از توش کثر میاد خود حضرت علی رو میگن اسفه وحدت از این اسفه وحدت از فقط در عمل نبوده در بیانم بوده از علی سخنانی داره که اگه بخوایم چه بسا از نگاه سنویت نگاه کنیم اصلاح موردیم که از دردی خدا رو ممکرم از که من خدای ندیده رو نفرستیده هم خوب منیچی دستایی که همیشه در همین مظاهر شبه دستایی پرستش خدای ندیده است، ولی اهلی میگه من خدای ندیده رو نفرستیده و نخواه هم پرستیده اشد تضاد و دیالیکتی در بیانش کاشده یوم اصلاح سخن دیگه داره در مورد صد که و فهمات که صد صادقان رو به همان مقصدی می رسند که کذب کاذبان رو در جهب نظر می سه که صد و کذب یکی هم چرا برای گرتو به یک مقصد می رسان. ببینید این اشد اززاده از این سخنان صدها کلام قصار از هزه هست که ما می بینیم و باید رو درک کن بنابراین این کافران مؤمن یا مؤمنان کافر در تاریخ جدید بسیار زیادتر شدند از آنجای که سواد کتاب اندیشه‌گری و عقل علیتی و ذهنی گسترش یافته در جهان بنابر این بیان ذهنی ایمان بیان ذهنی ارزشهای دینی و توحیدی به اشد تزار و دیالکتیک منجر میشه و متهم و محکوم به کفر و الحاد و ارتداد میشه ما با این مزدور در جامعه خودمون هم در خوزن در این دهه اخیر به و کار داشتیم این مسئله هم باستی کاملا درک بشه ولی ما در پاسخ به سوال شما این که روی عمل ایمانی چیه وازعادارون عمل صالح عمل حجلانه این در قرآن دستوری برقرار دارید به شما یک که هدایت شده هدایت شده گونه این هستن کسایی که ایمانی به خدا دارن ایمان به ایمان به رسولان و هر آنچه برای نازیر شده و بعد حسانی هستن که انفاق میکنن و هر که خدا به اونها داده از همه چیزهایی که خود دارند انفاق میکنن برای مرزمان ببینیم خیرات و یه نقدار خورد تصف را وقت کندن نیست در جادیه داریم که از بهترین چیزهایی که خدا به اونها داده انفاق میکنن از بهترین هاش نه از آشخال انفاق کنن خب واضحه چی؟ حالا اون فرق کلامش چه کافرانه باشه چه کافرانه نباشه نماز خوندنش چه فکری باشه چه ذکری باشه چه نمادین باشه اینکه طبق سنت و فرهنگ و مذهب خودش عبادتش نیایشش چه فایده داشته باشه اینها ملاک نیست ما به میزانی که اصیل این کلیشه ها میشیم همواره فرید میخوریم و این دو در جامعه ما در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده و باعث مردم فریبی های کلانی شده تا اون حدی که مردمان ها اصلا دین رو منکر شدند که آقا جان ما فلانی فلان کس این همه نماز میخوند فیرات میداد فلان فلان ما ازش پیروی کردیم فکر ما آدم خوبیه و کافر شدیم ببینید این قشنگری حال میتونه خیلی راحت دین و اعتقاد و ابتدای ترین حد تعلق دینی انسان رو میتونه به آسانی برگاهد من در مورد این تهکی که شما صحبت کردیم که یک سرش کفری، یک سرش اخلاص. خب این رو در این طور که خودتوران گفتیم خب بین این در این تهکی سری درجات یا مراهلی بوجود داره صحبت از شرک و نفاق هم کردید با عنوان مراحل یا جایگاه یا مقاماتی که یک فرق میکنه در این تیب تیب بکنه با سو خواهید این شرک و نفاق رو بیشتر توضیح بدید که این چیست من امونم گفتیم دین می تکیست که تو قطب مطلق داری که کفر چی اخلاص. کفر بدی تعریف شد. قطب کامل یعنی انکار کار کامل و جهان واقعیت از جمله واقعیت ریشتن نیز واقعیت بیرونی که منجر میشه به انکار دین و انکار خدا این کام در قدر مقابلش اخلاص وجود داره که آلیترین حد ایمان هست که در قرآن کریم وصف مفصلی داریم که عباد الله المخلصین کامل شدگانی در ایمان هستند به مقامی از خدا پرستی رسیدن که اون منیت و نفسانیتشون در ذات خدا حل شده و محو شده و جز خدا و اراده الهی در آنها باقی نمونده برای همین خداوند می‌فرماد که آنها مسئول اعمال خود نیستند بلکه من مسئول اعمال آنها هستم و هرچی که از آنها صادر میشه همه تماما از خداست و آنها در جنات نیم پروردگار هستند و از نزد خدا و به دست خدا روزی میخورند اون مقام مختصینه مقام در واقع خداست های خداست کمازش امامان ما هستند اراده اونها اراده خداست در احادیس داریم خشم آنها خشم خداست محبت آنها محبت خداست و فعل آنها فعل خداست و در واقع خلیفه خدا. در جهان هستند. به این کمال ایمان و اسلام یعنی مسلمانین و شرک و نفاق و درجات ایمان بین این دو قطب قرار دارند درجات و تیف دینه از ایلال باید گفتش که دین و ایمان آفتی جز شرک ندارد خداوند در قرآن میفرماد که اکثر آدم ها وقتی ایمان میآورند، بلافاصله مشک میشد. این دوره نمود. اکثر. عزیزان وقتی انسان ایمان آورد، ها به دلخره شرک دراش پیدا میشه. بنابراین بقیه عمرش کاری جز شرک زدایی نداره و به میزانی که شرک زدایی میکنه در واقعا به اخلاص میرسه. این ها رو پاک می از ایمان خودش خب شکل چیه؟ شکل لغتش بیان می خودش رو یعنی برای خدا شریک قائل شدن یعنی دین رو خدا رو کافی ندانستن بقول معروف خدا هست و خوبه ولی خوب خدا خورمان باستی باشه بریم من خداوند و همونده که آنهایی که دین رو آخرت رو انتخاب کردند بر دنیا خداوند آنها رو در دنیا بی‌نیاز میکنه. یعنی به اندازه نیازشون که آنها رو گمران نکنه و در اینها در نکنه به آنها رزق خواهد داد بیش از این یعنی بیش از نیاز طبیعی وجود و حیات دنیوی هر که مؤمن بخواد شرک است یعنی زیاد طلبیاش شرک های اوست به میزانی که یک مؤمن میگه آنچه که من دارم خب میبینه واقعا یادانی براورده میکنه دریوزار نگرد اون رو ولی هرس ربا ربا یعنی لغتش یعنی زیاد طلبی زیاد طلبی های یک مؤمن هست که او رو مشرک میکنه که به سمت ایمان فروشی و دین فروشی میبره که از ایمان خودش از معرفت خودش بکاهه در روابط اجتماعی در معیشتش تا بتونه معیشت و محبت و عواطف و ریاست و سیاست به دست بیاره و بیان دیگه میشه گفت ایمان فروشی و دین فروشی خرد خورد انجام میشه اینا یک دفعه انجام نمیشه خب حالا این در وجود انسان چگونه رخ میده ؟ ایمان گفتیم در قلبه ذهن گفتیم ظرف دنیاست و برداشت دنیایی انسانه برای ذهن انسان محل درکه واقعیت مادی و محسوسه محسوسات و مادیات همون دنیاست اسمش کمال ذات این دنیا بواسطه دلی که در و دریافت میشه برای همینه کمال ایمان اخلاص مقام لقاواللا است دیدار با خداست خدا زلی اینطوری اشا میگم وقتی خدا در همین واقعیت محسوس جهان خدا را درک میکنه خب ذهن همش آرزوها و های دنیوی و زیاد طلبی هاست ازیادوا گفتش که شرک یعنی آرزوها و خواسته ذهنی و دنیایی رو آوردن شریک دل کردن گذاشتن بقل دست خدا و با خدا شریک کردن در صورتی که ذهن برای یک عهد مومن، عهد ایمان باستی قدم روی کسب معرفت و حکمت باشه نه قدم روی آرزو ما در تمام قرآن در دریای از احادیث مربوط به عمه ورزن علیه در اصفان با قضوص ما داریم که از علیه می که شیطان همون آرزوهاست راه جهنم راه آرزو پدستی ها و آرمان پدستی هاست آرزو آرمان همه ذهنی هست ببین یک مومن از این طریقه گام به گام مشترک میشه تا جایی که منافق میشه تا جایی که یه باش یعنی غث کشش قای شوشه قای شد خدا قرون کردن اومده که اعمال مشترک اون محکوم به ابطال یعنی تمام تلاشای این شکلی مؤمنان باطل میشه درحای ایمانش خود خودی برابر نمیشه تا مردم بیشتر اون دوست بدن تا بیشتر اون حلوا واکنن حلو حلو تا پول بیشتر بهش بدن تا ریاسالت و سیاست بیشتری بهش بدن ولی همباش باطل میشه نمیرسه ولی بخدا اگر توبه نکنه یک دفعه میزنه زیر دین میگه ول اصلا نخواستم این ایمان به چه دردی میخوره؟ ما میخواستیم آقا شها بشیم بره همه سلطنت کنیم همه بیان دست ما پس چرا نمیان آقا؟ این دیکن بزرکتاییم قسپس های ایمان چرا ممکنه سر وطن های کلام نباشه ریاست طلبی ها چرا مردم نمیان من رو بفرستند به جای خدا ببین شرکنی برای خدا شرک شدن مومنی میگه مردم باید منو بفرستند. مومن به میزانی که مردم رو با جایی دعوتی به خدا کنه دعوتی به خودش می‌کنه داره در واقع مشرک میشه خودش رو شرک خدا کرده در واقع یک مومن در مسیر ایمانش با کسی معرفت گام با گام باستی منزدائی و خودزدائی کنه تا جز خدا باقی نمونه در بیشتش این مقام اخلاس حالا چطور میشه منافق میشه نفاق یعنی یعنی چاه یعنی خندق این چاه این, این خندق در کجا وجود میاد در وجود انسان همون خندق و خلای بین ذهن و دل دنیا و آخرت با جایی مومن بیاد با نور ایمانش تمام ذهن رو منور کنه و قلم روح حکمت و معرفت بکنه و تمام آرزوی ها و حوث رو پاک کنه میاد هی دنیا می‌کاره می‌کاره می‌کاره. کاره بین ذهن و دلش قطع رابطه میشه می بره برای خلاع نفاق یک خلاع و یک چاهی به که اون فرد نهایتا ایمانش دست میده و در این چاه سقوط می کنه که این در منافقین فیدره کن اصفل صافلین گفته درک اکه اصفل فاصله این خلاعی بین اینجا تا اینجاست که طرف سقوط میکنه کنه رونجا تصوری مومن بایستی اینجا رو ذهن رو با دلش متحد کنه دل قدم رو به نور ایمان و نور حق، این نور رو باستی بر ذهن بتا و ذهنش رو تحت فرمان نور ایمان در بیاره تو قدم رو حکمت بشه تا دل و ذهنش رو یگانه کنه این یعنی توحید مباهید شدن. کسی گفت خدا کس مباهید نیست نه کافران هم میگن خدا کسی هیچ کسی نبوده خدایی چندست به جان اینکه این رو به اتحاد برسونه دوگانه میکنه و تا جایی که بین ذهن و دلش یعنی بین دنیا آخریتش رو می و دو شبقه میکنه وجود خودش رو و در این خله سقوط میکنه. این مسئله نفاق هستش باز در قولان مزایی بنابراین باز می گفتش که نفاق حاصل دین فروشیه و یک مامانه. در واقع تاریخ و پروری یک مامان دیگه بود. بله دیگه یعنی ایمانش میفروشه تاریخ های دنیا دیشو پرور کنه ولی ایمان جزاست میده یعنی مامانی که دینشو رو خاملاً فروش و از دست داد در دنیا هر استیو داری هاش منافق میشه و منافق ما من بدون که اگر گل نماده که شدی ترین کافر نهسته. شدی ترین ولی از اون که او یک دورانی رو ایمان داشته خب حاضر نیست که این ایمانش رو در احبت اجتماعی خودش که قبلا کاشته بودن از بین ببره در اونجا همچنان میخواد دین نمایی و ایمان نمایی کنه و به همان نشون که من مؤمنم حالا که در قلبش ایمانه رو از دست داده و کافر شده در دلش مور خورده ها ولی میخواد همچنان نون دین فروشی خودش رو در بیرون بخوره به این میگه مناف در ظاهر، در بیرون، در کردار، در رفتار. مؤمن تو دلش کافر. برای همین نظر قرآن اماده که منافقین زبانهای بسیار چرب دارند در جلو مردمان و مخصوصا پیش مؤمنان بسیار جانواز های میکشند و میگن ما با شما دوست هستیم حالان که سر دلشون کافرن و در پنهان با کافران سر و سر دارند. و خود به خود تیمیم